فریاد می کونم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد می کونم بر راه جهاد این راه حق راه نجات فریاد می بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد می کونم بر راه جهاد این راه حق راه نجات قریاد می بر راه جیحا این راه حق اینک به خدمت شما عزیزان از سلسله ترانه‌ها ها مجموعه بنامی راه نجات حواله کردیم و از خداوندی کریم امیدوارم که شنوندگان ارجمن افکار و توصیح و ملاحظات خیش را با واسطه خط به ما ارسال می نمایند Waman Zilima, Kuhistani Qurasan, Harakati Islami Uzbekistan, Isti Yui i Jadi Jumbullah, Sali yek Hazaru Chahor Sadu Bistahfdi Hijri, Bahi Safat, Safa Rohi Wasalam alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bar Rohijiha in Rohihab Rohina Joh Bariot me kumem barrohijiha in Rohihab. Oh, oh in the, joy. Oh, in the joy.